اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما ما يسفرون. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند ما انت به ربك بمجنون که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی و این لکه لأجرا غیر ممنون و برای تو پاداشی عظیم و همیشگیست و این لکه لعلا خلوق عظیم و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری و صِرَّ و بزودی تو میبینی و آنان نیز میبینند که کدام یک از شما مجنونید إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعلم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پروردگارت بهتر از هر کس میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر میشناسد فلا حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن ودو لو آنها دوست دارند نرمش نشاندهی تا آنها هم نرمش نشان دهند ولا توطع كل حلا و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پسته است اطاعت مکند هماز کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند. من ناعلی الخیر معتدین و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است اطلین بعد ذالک زنیم علاوه بر اینها کین توز و پرخور و خشن و بدنام است انکان ذا مال و بنین مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنیم اینا تلا قال هنگامی که آیات ما بر او خوانده میشود میگوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است سنسمه الخرطوم ولی ما به‌زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم این نول كما اون اصحاب مبل اون آاصدل جندی اقسممون اقسممون یا ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم هنگامی که سوگند یاد کردند. كه های باغ را صبح گاهان دور از چشم مستمندان بچینند ولا و هیچ از آن استثنا نكنند فطاف عله طاف من ربك وهم نائمون اما عذابی فراگیر شب بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند و آن باق سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد و مصبحین یک دیگر را صدا زدند که به سوی کشت زار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید فان وهم يتخافتون آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم میگفتند الا يدخلن ها اليوم مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود و علی حرد قادرین آری، آنها صوفگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند فلن ما رأوها قالو اینا لضالون هنگامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند حقا ما گمراهیم بل نحن محرومون آری همه چیز از دست ما رفته بلکه ما محرومیم قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون یکی از آنها که از همه عاقل تر بود گفت آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمیگویید قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين گفتند منزه است پروردگار ما مسلما ما ظالم بودیم ساقبل بعضهم على بعض يتلاومون سپس رو به یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختن. قالوا يا ویلنا إنا كنا طاغین و فریادشان بلند شد گفتند وای بر ما كه بودیم عسی ربنا أن یبدلنا منها إنا إلی ربنا راغبون امیدواریم پروردگارمان ما را ببخشد و بهتر از آن به جای آن به ما برهد چرا که ما به او علاقمندیم كذلك العذاب ولعذاب الاخره اکبر لو كانوا يعلمون. این انگون است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر میدانستند. این لل المقین ایندار بیم جننتیم نیم مسلما برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان گارشان پرنعمت بهشت است افن جلول مسلیم این آیا مغمان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟ ملم كيف تحكمون؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ ام آیا کتابی دارید که از آن درس می این لکم فیه لما تخیرون؟ که آنچه را شما انتخاب می کنید از آن شماست؟ املكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون یا ان اهد عهد و پیمان مؤكد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید كه هر را حکم کنید برای شما باشد سلهم اينهم به ذلك از آنها بپرس کدام يك از آنان این چیزی را تضمین می‌کند املهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم كانوا صادقین یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار دادهاند اگر راست میگویند معبودان خود را بیاورند يوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون به خاطر بیاورید روزی را که ساغ پاها از وحشت به رهنه و دعوت به سجود میشوند. اما نمی توانند خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله و كانوا یدعون الى السجود وهم سالمون این در حالیست که چشمهایشان از شدت شرمساری به زیر افتاده و ضلت و خاری وجودشان را فرا گرفته آنها پیش از این دعوت به سجود میشدند، در حالی که سالم بودند فذرنی و من یکذب به سنستدرجهم من لا اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب میکنند کنند گزار. ما آنان را از آن جا که نمیدانند به تدریج به سوی عذاب پیش میبریم و املی لهم این کیدی متین و به آنها مهلت بازگشت میدهم دهم چرا که نقشه های من محکم و دقیق است. ام تسالهم اجرا فهم مسقلون یا اینکه تو از آنها می میطلبی که پرداختش برای آنها سنگین است. یا <dennifiam> <Ramangoid tradition fairlyom Münquecents> <Ramang Russian rumors> اسرار غیب نزد آنهاست و آن را مینویسند. تصمير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت ابناده وهو مكذوم اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی یونس مباش که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولا شد در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند و, و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود از شکم ماهی بیرون افکنده میشد در حالی که نکوهیده بود. فَجَاءَتْهُ ربه فجعله من الصالحين ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد و ان يكاد الذين كفروا يزلقونك بابصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می گویند او دیوانه است در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست